امضا و تایید داریم تاسیلات وام وام ماستن و یا تاسیلات دیگر هستند. آیا این مسئولین لیز شریک جرم افراد وام گیرنده هستن در درباره آنها؟ شریک میشه یا نه؟ بله. کسی که مسئول است که مهر بزنه، امضا بکنه، وام ها رو تحویل بده، تحویل بگیره، همه اینها لعنت شدهاند. چون در قدر روا میبینند لعنت هست و شاهد لعنت هست. گیرنده‌لانات هست دهنده لانات هست پس کسی که این کار می میکنه ولو کاروان باشه در این وعیدش وارد هست حدیث هم آمده است